با اونه مجا یا علی مدر باید خواهد شد خدااند مهدمان اظهار محبت و مودت که شما خوبان که انجام انجان دادایی رو قبول بفرماید به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد <تصال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين القاهرين المعصومين. وبعد قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام فدنوت منه لأسمع ما يقول له وكنت إذا ذاك مريضا فسمعت أبي يقول لأصحابه اثني على الله أحسن الثناءسن سال روزه پر از و حواطن آشرای حسینی را همه با هم و محذر مقدس مام غصر علیه و سلام را تصفیه و همینطور برای همه جامعه اسلامی همه مسلمانان در سرت و سر عالم و برای شما خوبان و اهد ایمان از دارم در چنین شب که شب آشرا محصول می شود و این وقایه ای اتفاق افتاده است که برای کسانی که می خواهد نکته از همین شب نکات برجسته را می توان کرد تحت یک روایتی که وارد شده است جمع سید و علیه السلام علیه السلام اصحابه عند قرب المساء لیوم تاسوعا امام سجاد علیه السلام چنین روایت میکند. در روز ناهوم نزدکی مزا یعنی شام حضرت سید و علیه السلام اصحابش رو جمع کرد فدنوت منه لاسمع ما یقول لهم اینجا من متوجه کردم خدم را و متوجه شدم تا بشنوم که پدرم به اصهابش چه میفرماید و کنت ادا داکه مریض ا و من در اون هنگام مریض بودم سخت هم مریض بودم ولی تلاش کردم که توجه کنم که پدرم به اصهابش چه میفرماید فسمعت ابی یقول شنیدم که پدرم فرمود، می فرمود به اصحابه، برای اصحاب خودش. خودشم اثنه علاله احسن سنا من خداوند متعال را سنا میگویم، اونم به زیباترین وجه سنا و احمده و قلصرآه و قرآه و خداوند متعال را سپاس میگویم، هم بر سستی ها و هم بر سختی ها اهل ایمان دقت فرمایند امام حسین علیه السلام این حمدش رو در زمان که زمان عادیش بیان نمیکند در زمان بیان میکند که شرایط سخت شده است در روز نهم دشمنان نزدیک خیمه ها و نزدیک خیام حسینی شده بودند در آن هنگام خود حضرت آقا همطوره داشت در حالت رویه بود حضرت زینب آمد برادر را از خواب بودند کرد و برادرجان کرد برادر جان صدای عصف دشمنان بیاید گمانم نزدیک شده اند اینجا حضرت آقا اول العباس علیه السلام و سلام را همراه که از, از خواب فرستان که این شب را فرصت بگیرد در چنین شبی که مثل این است که یک شب فرصت دارد حضرت آقای شنین بیان میکند خداوند متعال را من بهترین وجهش سنا میگویم و خداوند مهربان را سپاس میگویم هم بر سختی‌ها هم بر سستی این برای اهل این است که در آسانی ها هم خود را گم نکنند و در سختی‌ها ها هم زیاد داد بیداد نکنند باید ذریعیت ایجاد شده باشد بچه می فرماید اللهم انی احمدک علا ان اکرم تنا بالنبوه خدایا ما تو را سپاس می گویم بر اینکه که ما خاندان را کرامت بخشیدی توسط نبوت و علمتنا القرآن خدای تو را سپاس می گویم برای اینکه که ما را قرآن تعلیم فرمودی و فقه تنا فی خدای تو را سپاس می گویم این که مرا در ما را در دین فقیح گردانیدی کسی کسیست که بسیار به گونه امیق در دین وارد شده است در چنین شبی که خیلی شبه سخت هست همده تا خواهر عبدالله علیه السلام در چونین موارد توجه می کند اینکه خدا عالم به قرآن گردانیده اینکه که خداوند متعال در چنین خاندان نبوت قرار داده و اینکه که خداوند متعال آنها را فقیه در ذیم گردانیده پس اهل ایمانی که حسینی می شود ای که جامعه آشرایی و حسینی باشد باید خداوند متعال را در سوستی و سختی ها یک حمد و ثنا گوید و همچون خداوند مهربان را سنا گویند زیرا خداوند متعال به اینها توفیق داده که در مسیر نبوت و در راستای رضایت خداوند متعال وارد شدهاند و آموزش قرآن را توفیق یادن و آموزش دین رو توفیق یادن این مهم است بعد حضرت آقا چی می اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اوفا بعد اینه که خداوند متعال و سنا می نثار مایه با راستی که من هیچ اصحاب را با وفاتر از اصحاب خودم نمی دانم و پیدا نمیتوانم در روی زمین واژه اوفا را دقت کنید یکی آدم با وفاست که وفا میکنند یکی کسانی که خیلی وفا میکنند آنهایی که خیلی با وفا هستند با آنها تعبیر اوفا را به کار میبرد فَإِمْنِي فا لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْرُفَا من هیچ اصحاب را با وفاتر از اصحاب خودم نمی دانم ولا خیرا من اصحابینا و هیچ اصحابی را بهتر از اصحاب خودم نمیدانم دانم براسته چونین بودن اصحابی یکی از دختران حضرت می در یکش شبهای محتابی بود غمها مرا بود، فرا بود داخل خیمه نشستم ناگاه دیدم که صدای گریه می آید از خیمه خودم همینطور با اندوه بیرون شدم رفتم دیدم صدای بابایم می آید که گریه می کند. دیدم پدرم اصحابش رو جمع کردم بانها انها میگوید که خدع و نیرنگ در ما خاندان احلوبه حرام است شما مردم همراه من حسین حرکت کرده بودید که شاید به یک مقام برسیم شاید حکومت از آن ما بشود ولی فعلا قضیه برعرض شده است کوفیان دیروز با من بیعت کرده بود امروز هیچ قصد و مرامی ندارند مگر این که من حسین رو بکشم اعلان دل شب هست شما از همه دل شب استفاده کنید بروید و جانتان رو نجات دهید بعد دختر آقا هست روایت می کند می, می گوید اما علیه و سلام از بزرگواری سرش و پایین انداخت تا اینکه چشم حسین به کسی نیفتد و کسی شرمینده نشود لذا می گوید دیدم که ده ده نفر بیس بیس نفر حسین رو تنها گذاشت تا اینکه در خانواده 70 70 چند نفر مرد بقیه همه رفتن این 70 70 چند نفر هم از که اوفا هستند از اصحابش که از اینها کرده بهتر بر راستی نیستند بعد مال علی علیه السلام می فرماید ولا اهل بیت امر ولا اوصلن اهل بیت و اهل و بیت و خاندانی هم مهربانتر از خاندان خودم در روی کوره زمین پیدا نمی اینها همگی برای ما و شما نقطه هست و پیام هست یعنی جامعه آشرایی باید با وفا باشد جامعه حسینی باید بهترین مردم باشد جامعه و خانواده حسینی باید خانواده مهربان باشد اگر مرد خانواده، سرپرست خانواده، در راه دین قدم میگذارد باید او را تا آخر دم یاری کرد، چون این چیزی هست، در شب آشورا، همون شب آشورایی که امام سجاد علیه السلام و سلام باز هم راوی هست، ما علیه سلام می‌فرماید: من مریض بودم، داخل خیمه بودم اما جانم زینب هم کنار بستر من بود و از من پرستاره میکرد در هم هنگامه شنیدم که بابایم امام حسین علیه السلام همراه جام که سابق از غلام عبادر بود همراه حسین علیه السلام در تربلا بود داشت شمشیر امام را اصلاح میکرد شنیدم بابایم این شیر را میخواند او لک راجب به بوفایی دنیا شیر سوسی بازم آلیه سلام این شیر رو من فهمیدم که بلا نازل شده است. اما جانم زینب هم متوجه شد من فهمیدم که بلا نازل شده است بغت گلویم رو گرفت ولی بله خودم رو همینطوره حفظ کردم اما جانم زینب هم شنید این صدا را بیتاب شد. همینطور شتابان رفت به سمت برادرش حسین خود را انداخت به دست و پای برادرش حسین؟ صدا زد برادر جان. چی سخت زمانش این زمان؟ مثل آن است که تازه جدم پدرم، رفت. پدرم، مادرم، برادرم امام مشتبه رو از دست داده باشم ای یادگار پدر و مادر و برادرم چگونه شده چه شده از اینگونه شعر می سرای و این گونه شعر می خواهی. اینجا نقل میکند مگه زینب چون متوجه قضیه شده بود با دست محکم زد به صورتش گریبان چاک کرد در پیش برادرش همینطوری شدید گریه کرد و افتاد نهش کرد نمانسین علیه السلام و سلام آب به صورت خواهر پاشید وقت خواهر به خوش آمد صداد خواهر جان شیطان سبرت رو نرو, نرو باید اگر اینها میگذاشت مورد آرام به آشیان آشیانش می خوابی. بعد اینجا حسین علیه سلات سلام نگه نگاه به خواهر می اشکان چشمش جاری می شود اینجا به خواهر وصیت می کند خوهر جان ما بعدا بعد از قتل حسین گریبان چار کنید ما بعد از قتل حسین از خدا مرگ به باید صبر پیشه کنی شما شراین گونه بودند. صلّى الله عليك يا عبد الله، و على الأرح التي حلت الثناء عليك منا. من الله يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا. وتوسلنا بك إلى الله. وقدمناك بين I'm uh -huh. ذلر مشى قبي نقم ملا در یک نقل می کند نصف شب دیدم حسین سمت از دنبان حسین را افتادم مبادا به حسین لسی آسه برساند حسین متوجه شد فرماد نافه چه میکنی کردم آقا جان آمدم از تو حمایت کنم عرض کردم آوان جان در این دل شب در این بیابان چرا؟ حسین فرمود و فردای سیمان حسین در این دل بیابان راه میروند شب دیگر از فال حسین در این بیابان دون کافش بخام خارمه غیلان رو بردارم صلى الله علیه یا رفت اللوح وعلا الروح التي حسدت بفن عمرك عمدها At